فصل چهار روم در کتاب ها آمده است که میمونی در زمان های قدیم راه روم تا اسپانیا را درخت به درخت پیمود بیان آنکه پا به زمین بگذارد نمیدانم این درست است یا نه در زمان این داستان تنها کناره خلیج اونبروزا و درهش چنین جنگلی داشت کتاب نک کوه ها کشیده شده بود منطقه ما تنها به همین خاطر معروف بود امروزه از آن همه اثری بجا نمانده است. در زمان لشکرکشی فرانسوی ها، درختان جنگل را همان گونه درو که هر سال کیسار‌ها را و پس از آن درختان تازه‌ای نروید. چون این پنداشته می شد که نابودی درختان ناشی از جنگ و ناپلئون و آن زمانه ویژه است. اما پس از آن نیز ادامه یافت. اکنون دامنه تپه ها چنان برهنه است که دیدن آن دل ما را که سرسبزی گذشته شان را به یاد داریم به درد می‌آورد. در گذشته هر کجا که می‌رفتیم، انبوهی از شاخ و برگ میان ما و آسمان بود. تنها جایی که اندکی تنوک میشد، نارنجستان‌ها بود. تازه در همانجا هم درختان انجیر، شاخه‌های کج و مج خود را میان درختان مرکبات می‌دوانید. گنبد برگهای های سنگینشان از درختان نارنجستان فراتر بود و آسمان را میپوشانید. آنجا که درخت انجیر نبود، درختان گیلاس با برگهای های تیرهشان یا درختان به، بلو و بادام بودند. یا درختان سنجد، خرنوب، توت، گردو. پس از باغها زیتونستان ها آغاز می شد. هایشان به عبری سیمگون میمانست، که تا های کناری دریا رفته بود. سپس میان بندرگاه و قلعه خانه های دهکده بود که از لابلای بام های آنها نیز کاکال بلود ها و سپیدارها و سندیان بیرون می‌زد. این درختان همه حالتی سربلند و تناورو به سامان داشت و این ویژگی درختان ناهیهی بود که اشراف خانه ها و باغ های خود را آنجا ساخته بودند. پس از زیتونستان ها جنگل آغاز می شود. در گذشتهها ها سراسر منطقه پوشیده از کاج و سنوبر بود. هنوز هم برندی های دو سوی خلیج پوشیده از آنها بود که چون موجی سبز تا به ساحل دریا می رسیدند. سندیان ها نیز بس بیشتر و انبوهتر از امروز بودند. همین درختان نخستین قربانیان یورش شدند. بالای شاه شاهبلوتها بر کاجها چیره می شد. جنگلی از آنها بر فراز کوه سار افراشته بود که کرانش به چشم نمی آمد این گونه بود دنیای سرسبزی که ما مردمان در می زیستیم بیان که بدانیم کجاییم نخستین کسی که به این همه پی برد کزیما بود همو بود که دریافت که در آن شاخ ساران بود، می توان از درختی به درخت دیگر رفت و فرسنگ ها راه پی مود. بیان نیازی به پا به زمین باشد. گاه میشد که تک زمین لختی وادارش کند راه درازی را دور بزند. اما به زودی همه راه و میان برها را شناخت. فاصله را دیگر بر اساس زابطهای پیش پا افتاده ما نمی سنجید. بلکه همواره اندازهی را در نظر داشت که باید از لابلای شاخه های درختان میپیمود. هر بار که حتی با جهش نیز نمی خود را به شاخه دیگری برساند. شگرد دیگری به کار می برد. اما به سهرگاهی برگردیم که کوزیمو برای نخستین بار روی شاخی بلود و در میان حیاهوی سارها از خواب بیدار شد. تنش کوفته و از شبنم خیز بود. دستها و پاهایش کرخت بود. و به دینگونه شادمانه به کشف دنیای تازهش رفت. خود را به سپیداری رسان که آخرین درخت باقیمان بود. زیر پایش در ردیده میشد که کاکلی از ابرو و از دود برسر داشت. دودی که از بامهای لوهی خانه های چنده بالا می که چون تلهایی از قلب سنگ در پس پشته افتاده بودند. گهگاه چونین می نمود که موجی ناپیدا و اغلب خاموش چشمنداز را در می نوردند. همان اندکی که به گوش می رسید نوعی دلشوره را بر همه جا چیره می کرد. جیغ هایی که ناگهان برمی خواست سپس قررشی و آنگاه ضربه های گنگ و شاید آوای ای که می شکست سپس دوباره جیغ هایی دکرگونه فریاد های خشماگینی که به سوی نقطه می رفت که هیاهو از آنجا برخواسته بود سپس هیچ انگار که هیچ چیز نشده بود چیزکی هر آسناک و دست نیافتنی به فهمی نفهمی می گذشت. در هر کجا که دوباره سر و صدایی بر می خواست، های دندانه دندانه گیلاس را می‌دیدی که با باد تکان می‌خورد. بخشی از ذهن کازیمو که همواره به هوش و بیدار بود، همه چیز را از پیش در بخش دیگری از ذهنش که خیال باف و بازی بود، گاهی شگرفترین پندارها را در خود می بدین گونه بود که کازیمو دید، درختان گیلاس سخن می‌گویند. به سوی نزدیک ترین درخت گیلاس، یا بهتر بگویم، به سوی ردیفی از گیلاس هایی بلند با برک های سبز و سرزنده رفت. درختان پر از گیلاس های سیاه بود، اما چشمان برادرم هنوز عادت نکرده بود که با یک نگاه ببیند روی شاخه‌ها چه هست و چه نیست. ایستاد. پنداشته بود صدایی میشنود اما همه جا ساکت بود. کوزیما روی شاخهی در نزدیکی زمین ایستاده بود. همه گیلاس های بالای سرش را حس می کرد بیان که بفهمد چگونه. چون این می‌نمود که هر دانه گیلاس چون نگاهی به او دوخته شده است. انگار که درخت به جای میوه پر از چشم بود. کوزیما سرش را بلند کرد. گیلاس رسیده روی پیشانیش افتاد و صدا کرد. چلپ. کوزیما با چشمان از هم گشوده نگاهی به فراز سایه گرفته درخت انداخت. خورشید بالا می آمد آن درخت و درختان نزدیکش پر از کودکانی بود که روی شاخه ها نشسته بودند کودکان با دیدن اینکه کسی آنان را دیده است همه سکوت را شکستند کزیمو شنید که با صداهای تیزی که می کوشیدند آهسته باشد گفتند نگاهش کن چه خوشگل است سپس هر کدامشان از لابلای برک یک شاخه پایین تر رفتند و به پسرکی که کلاه سگوش به سر داشت نزدیک تر شدند. خودشان سر بودند یا کلاه حسیری پارهی به سر داشتند. چندتاییشان را چون باشلغ روی سر انداخته بودند. همه جامعهشان پیرهنی و شلواری ژنده پاره بود. آنهایی که پا نبودند رشتههایی از پارچه را چارخ کرده بودند. برخیشان دمپهایی های خود را به گردن آویخته بودند تا راحت تر از درخت بالا روند. بچه های دسته معروفه میوه دزدان بودند که پدر و مادرمان ما را از آنان بر می داشتند و در آن بام داد چون این می مینمود که برادرم در جستجوی آنان است بیاکه خود به روشنی بداند که از رابطه با آنان چه چیزی دستگیرش خواهد شد از جا نمی جبیید و منتظر بود. بچه ها از شاخه های پایین می و با صداهای جیغمانندشان آهسته میگفتند. این دیگر چه پرنده ایست؟ اینجا چه کار می کند؟ در همان حال هسته گیلاسی را که در دهان داشتند به سوی او پرتاب میکردند. گیلاس های کرمو و گندیده را به سوی او می انداختند. ناگهان چشمشان به شمشیر کازی افتاد که از پشت سرش آویخته بود. گفتند "اوه بچه ها دیدید چه دارد؟" یک کپل کوب همه خندیدند اما خنده‌هایشان را زود خفه کردند و دوباره سکوت شد. چیزکی را تدارک میدیدند که همهشان را از خنده رود بر می‌کرد. دو نفرشان بی سر و صدا خود را به شاخه درست بالای سر کازی بودند و گونی بزرگ بازی را به سوی او می‌لغزاندند. یکی از همان گونی‌های کثیفی که بیشک هر را که می‌دزدیدند در آن جا می‌دادند و اگر خالی بود آن را باشلق خود می کردند. چیزی نمانده بود که برادرم را قافل گیرانه در گونی ببندند و تنابی را به دورش بکشند و دست و پابسته لگت کوبش کنند کوزی خطر را حس کرد یا شاید چیزی حس نکرد و تنها به این خاطر که به شمشیرش میخندیدند، خواست آن را از غلاف بیرون بکشد و زهر چشمی بگیرد شمشیر را افراشت نکه آن به گونی خورد گونی را درید با حرکتی گونی را به دور تیغه شمشیر پیچاند و آن را از دست دو ولگرد بیرون کشید و به گوشه پرتاب کرد. حرکتش تر دستانه بود. ولگردها ها جا خوردند و صدایشان درآمد. چند ناسزای سخت نصیب دو پسرکی شد که گونی را از دست داده بودند. گوها! و پا چلفتی ها! کزیما فرصد نیاف پیروزیش را مزه مزه کند. آشوب دیگری برخواست که این بار از روی زمین بود سگها پارس می کردند. کسانی سنگ میانداختند و صدای فریاد می آنند. این دفعه گیرتان انداختیم نا ها! نکه تیز چند چنگک از لابلای شاخه ها پیدا شد بچه های می به دوست را جمع کردند و بالا کشیدند گویا سر و صدایی که به خاطر کوزیمو برپا کرده بودند دهقانان را به سراغشان آورده بود یورشی گسترده و از پیش آماده شده بود. زمینداران و کشاورزان دره از دزدی میوه‌های تازه رسیده‌شان به تنگ آمده و برای چاره متحد شده بودند. شگرده بچه‌های برگرد این بود که همه با هم به یک باغ هجوم بردند. آن را لخت می‌کردند، به هر چه دورتر میگریختند و کارشان را از سر می‌گرفتند. تنها با شگردی همانند میشد با آنان رو در رو شد یعنی اینکه باید همه در باقی جمع می شدند و منتظر میمانند تا میوه دستان دیر یا زود به آن حمله کنند و آنگاه آنان را در محاصره می گرفتند. سک های قلاده های قللا میکردند او می کردند و پای درختها در جست و خیز بودند دندان های تیزشان آخته بود. سه چهار کودک ورگرد پایین میپریدند که چنگک ها پشتشان را سوراخ کرد و سگ خشتکشان را دریدند. کودکان همان‌چنان که جیغ میکشیدند و با ضربه سر خود حصار ها را می‌دریدند، پا به فرار گذاشتند. پس از آن هیچ کس به فکر پایین رفتن نیفتاد، نه کوزیمو و نه دیگران. کشاورزان نردبانهایی را به درختان گیلاس تکیه دادند و چنگک به دست از آنها بالا آمدند. کوزیمو پس از کمی دودلی دریافت که ابلهانه است اگر اون نیز چون آن کودکان وحشت‌زده دست و پای خودش را گم کند و گیج شود. هیچ دلیلی نداشت که آنان از او زرنگ تر باشند مگر نه اینکه همهشان گیج و منگ سر جایشان وامانده بودند چرا نمی گریختند و خودشان را به درختان دیگر نمیرساندند برادرم می توانست از همان راهی که آمده بود برگردد. کلاهش را بر سرگذاشت شاخ ای را که پل او شده بود پیدا کرد از آخرین درخت گیلاس خود را به یک درخت خرنوب رساند از آن گذشت و به یک درخت آلو رسید و همین گونه پیش رفت هنگامی که کودکان دیدند او بالای شاخه ها به همان گونه قدم می زند که کسی در میدانگاهی ده کده دانستن که باید بیدرنگ دنبال او بروند وگرنه گمش می کنند بی سر و صدا و چهار دست و پا او را در راه پیچاپیچش دنبال کردند و کازیما از انجیری بالا رفت از پرچینی گذاشت پا به شاخه درخت هلوی چنان شکننده گذاشت که تنها تک تک می شد. سوارش شد. از درخت حلوب تنه درهم پیچیده ی زیتونی رسید که سر از دیوار بیرون برده بود از بالای آن با یک جهش میشد خود را به سندیان تناوری رساند که بالای رودخانه ای شاخه دوانده بود سپس به آن سوی رودخانه می رسیدی. مردان چنگک به دست که دزدان را به دام افتاده میپنداشتند دیدند که آنان چون پرنده از هوا می گریزند. دوان دوان همراه با او او سگ ها دنبالشان کرد. اما مجبور شدند پرچین باغ را دور بزنند و در آن نقطه رودخانه خانه پولی نبود. تا گداری پیدا کنند وقت گذشته بود. بچه ها دوان دوان دور می شدند. اکنون دیگر مانند هر کسی روی زمین می دویدند. جز برادرم کسی بالای شاخه ها نمانده بود. بچه ها که او را پیشا پیش خود نمی دیدند، از یک دیگر پرسیدند بن باز پا به پایمان ما کجا زد؟ نگاهی به بالا انداختند. خوزی ما از زیتونی به زیتون دیگر می رفت. آهای بیا پایین. دیگر نمی توانند به ما برسند. اما او پایین نرفت. از شاخهای به شاخهی و از درختی به درخت دیگر رفت و در انبوه برک های ناپدید شد. پسرکان ولگرد گونی به سر و ترکه به دست به جان درختان گیلاس تحت در افتاده بودند. با نظم و ترتیب پیش می رفتند. شاخه یکی پس از دیگری لخت می کردند. تا اینکه چشمشان به پسرک پا و به پا افتاد که نوک درخت گیلاس نشسته و پاهایش را روی هم انداخته بود. دومه گیلاس ها را با دو انگوش می و آنها را در کلاه سگوشش که روی زانو گذاشته بود جمع می کرد. آهای! از کجا آمدی؟ لحنشان به ویژه از آن رو گستاخانه بود که به او رشک می بردند. چون به راستی چونین می نمود که او پرزنان خود را به آنجا رسانده باشد برادرم گیلاس هایی را که در کلاه داشت یکی یکی بر و به دهان می برد. با حالتی که انگار مربا میخورد. سپس با حرکت ظریفی هسته گیلاس را به کناری پرتاب می‌کرد و مواظب بود که جلیقش کسیف نشود یکی از ولگردان گفت این یاروی نازنازی از جان ما چه میخواهد؟ چرا ولمان نمی کند؟ چرا نمی روید گیلاس های باغ خودش را بخورد؟ دیگری گفت گاهی وقتها بین بچه های نازنازی هم اشتباهی کسی به دنیا می آید که سرش به تنش می مثل کلا قرمزی کازیما با شنیدن این نام گوش گوشتیز کرد و سرخ شد بیان که خود نیز دلیل آن را بداند یکی دیگر از بچه ها گفت کلا <تصفيق> قرمزی به ما خیانت کرد اما با همه نازنازی بودنش دختر بیباکی بود اگر امروز این طرف ها بود صدای شیپورش را در می و نمی ما قافل گیر بشویم البته یک نازنازی هم می تواند جزو دسته ما باشد به شرطی که طرف ما را بگیرد کزیمو فهمید که منظور از نازنازی همه بزرگان و اشرافزادگان و کسانی است که دستشان به دهانشان میرسد یکی از ولگردان گفت گوش کن، مرد و مردانه حرف بزنیم اگر میخوای از ما باشی باید در عملیات همراه ما باشی و راههایی را که بلدی به ما نشان بدهی دیگری گفت بعد هم، باید بگذاری که به سراغ باغ بابایت هم برویم یک بار آنجا مرا با گلوله نمک زدند کزیمو همچنان گوش می کرد فکری به سرش زده بود گفت: این کلاه قرمزی کیست؟ همه یه بچه های لابلای شاخه ها به قهقه افتادند چونان خنده ای که کم مانده بود برخیشان را از بالای درخت نقشه زمین کند. بعضیشان از زور خنده خود را به پشت میانداختند و تنها از پاهایشان به درخت آویزان بودند برخی دیگر با دست شاخهای ای را گرفته و در هوا ویخته بودند و قه طبیعی بود که پس از چنان هیاهوی نیروهای دشمن از راه برسند. این بار دسته دهگانان با سکهایشان در همان نزدیکی بودند. او اوی ها به هوا رفت و نکه چنگکها پیدا شد. روستاییان که از شکست پیشین درس آموخته بودند، این بار بیدرنگ از نردبانها بالا رفتند و درختان گیلاس را اشغال کردند. پیشروی چنگک چنگکها و شنکشها به سوی دوستانه به دام افتاده آغاز شد. سک ها که همه درخت را پر آدم می دیدند و نمی به کدام سو حمله کنند، گیج و سردرگم به هر سو می رفتند و پارس می کردند. بچه های ولگرد یکی یکی خود را پایین انداختند و هر کدام از گوشه گریختند. گذشته از چند نفری که چماقی یا سنگی خوردند یا سک ها پایشان را گاز گرفتند، بقیه از معرکه جان سالم به در بردند. کوزیما بالای درخت تنها مان بچه های دیگر داد می زدند. به پرپاهین چه کار می کنی خوابت برده؟ تا راهواز است به پرپاهین. اما او همچنان که خود را به شاخه می فشد، شمشیرش را بیرون کشید. روز تا درختان پیرامون او چنگک های خود را به چوب دراز دیگری بسته بودند تا به او برسد. کازیمو با چرخاندن شمشیرش آنها را از خود دور می کرد. سرانجام نکه چنگکی به سینهش رسید و او را به تنهی درخت چسباند کسی فریاد زد. دست نگه دارید. پسر بارانلاورس است آن بالا چه کار ارباب؟ شما را با این اوباش چه کار؟ صدای ژانورا را شناخت که یکی از رعیتهای پدرمان بود. چنگک ها پس رفتند. چند تنی از ده خانان را از سر برداشتند. برادرم کلاهش را با دو انگشت گرفت و سرخم کرد چند نفری داد زدند؟ آهای اه سگ را ببندید بفرمایید ارباب. باب می توانید بیایید پایین مواظب باشید درختش بلند است صبر کنید نردبان بیاوریم خودمان شما رو به خانه میرسانیم. برادرم گفت؟ نه نه متشکرم زحمت نکشید خودم راه را بلدم تنهایی برمیگردم پشت تنه درخت ناپدید شد و از شاخه دیگری سر در آورد دوباره تنه را دور زد و به شاخه بلندتری رفت یک بار دیگر ناپدید شد و پاهایش روی شاخه بلندی در نوک درخت به چشم آمد سرانجام جستی زد و ناپدید شد روستاییان نگاهی به بالا و نگاهی به پایین میانداختند و می گفتند کو کجا رفت ها کجاست؟ کوزیمو در نوک درخت دیگری دیده شد تکانی خورد انگار که باد او را می‌برد و جست زد افتاد نه آنجاست در میان شاخسار سبز تنها کلاه سگوش و نوار بسته به موهایش دیده می‌شد روستاییان از جانا می پرسیدند. این چربابی است که تو داری آدم است یا جانور نکند خود شیطان است ژانو چیزی نمی گفت روی سینه صلیب می کشید صدای آواز کازی آمد که می او کلا قرمزی